اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصال الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اینهو هو السمیع البصير پاک و منظه است کسی که بنده اشرا شبیه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را برکت داد این برد تا برخی از آیات خود را به او بنمایانیم، بیگمان اوست که شنوايی بین آست. و آتينا موسى الكتاب و هدى لبني اسرائيل، ألا تتخذوا من دونى و و ما به موسی كتاب دادیم. و آن را مایه هدایت برای بنی اسرائیل گرداندیم و فرمودیم که جز من کار سازی بر مگ <تصفيق> ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم به راستی او بنده ای گزار بود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 و ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات وحی کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی و تقیان بزرگی خواهید نمود فَإِذَا فا جَاءَ وَعْدُ هم بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بعثنا عليكم عبادا لنا اول بأس شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا پس هنگامی که وعده نخستین آن دوبار فرارسد گروهی از بندگان بسیار نیرومند خود را بر شما برانگیزیم. پس برای قتل و کشتار درون خانه ها را جستجو کنند و این وعده شدنی و قطعی است. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامدناكم باموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم اكثر نفیرا انگاه شما را بر آنها گردانیم و شما را با انبال و فرزندان یاریتان کنیم و تعداد نفرات شما را بیشتر از دشمن گردانیم این احسنتم احسنتم لی انفسکم و این اسعتم فلها فا اذا جاء وعد الاخرات وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتكبروا ما على تبيرا اگر نگی کنید به خودتان نیکی کرده اید و اگر بدی کنید باز به خود کرده اید پس هنگامی که وعده دیگر فرار شد چنان دشمنان بر شما مسلط هستند که آثار غم و اندوه در چهره هایتان ظاهر می شود و به مسجد درآیند همان گونه که در مرتبه اول وارد شدند و آنچه را زیر سلطه خود یابند یک سر نابود گردانند عسا ربكم این و این عدتم عدنا و جعلنا جهنم لکافرین امید است که پروردگارتان به شما رحم فرماید و اگر برگردید ما هم باز میگردیم و جهنم را برای کافران زندان قرار دادیم إن هذا القرآن يهدیلی لتیه هي اقوام ويبشر المؤمنين المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا بیشک این قرآن براهی که آن استوار ترین راه هدایت می و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند، بشارت میدهد که برای آنها پاداش بزرگی است و, لا لهم عذاباً علیماً. و این اینکه برای کسانی که به آخرت ایمان ندارند عذاب دردناکی را آماده کرده ایم. و الإنسان بالشر بشر دعاءه بالخیر و الانسان عجولا و انسان بدیها را می طلبد آنگون ها را طلب می کند. و انسان همیشه عجول است وجعلنا جعلن اللیل و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 و ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم پس نشانی شب را محو کردیم و نشانی روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتو آن از پروردگارتان فضل و روزی بجویید و تا شمارش سالها و حساب را بدانید و هر چیز را به تفصیل بیان کرده ایم وكل انسان المزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتاب القاه منشورا وهر انساني اعمال خير وشرش را در گردنش آویخته این. و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را سرگشونه می بیند اقرأ کتاب که کفا بی نفسی کالیوم علیک و به او می فرماییم کتابت را کافی است که امروز خود حساب گرخیش خیش باشی من اهتده فا اینما یهتدی نفسی و من ضل فإنما يضل عليها و لا تذر وازرت وزر اخرى و ما معذبین حتى نبعث رسولا کسی که هدایت یابد برای خود هدایت یافته است و کسی که گمراه گردد فقط به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و ما هرگز عذاب نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری بفرستیم و اذا اردنا ان اهلك قريه امرنا مترف فيها ففسقوا فيها فيها فحق عليها القول فدمرناها و هنگامی که بخواهیم دیاری ایرانا بود کنیم به مترفین آنجا فرمان اطاعت میدهیم پس چون در آنجا به فسق و فساد برخواستند آنگاه بعدی عذاب بر آنها محقق میگردد پس آنها را به کلی نابود گردانیم و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفا بذنوب عباده خبیرا و چه بسیار نسلها را که بعد از نوح زندگی میکردند کردند کردیم کافی است که پروردگارت نسبت به گناهان بندگانش دانای بیناست من کان یرید العجل تعجلنا له فی همان شاؤلی من نرید عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنما ثم جعلنا له جهنم ما يصلاها مذمومًا هر کس که دنیای زود گذر را بخواهد در آن دنیا برای هر که بخواهیم، همان اندازه که بخواهیم زود خواهیم داد، سپس جهنم را برای او قرار خواهیم داد که نگوهیده مردود در آتش سوزان آن درآید ومن اراد الاخرات ووس صعنا مؤمنون فعلاائ ك كان سعوم مشکور و کسی که سرای آخرت را بخواهد و برای آن سعی و تلاش خود را بکند در حالی که مؤمن باشد پس اینان سعیشان مشکور است كلا... نو مّها ألاائ وهالااء من عضائربك وما كان عط رك محبورو هر یک از اینان و آنان از عطای پروردگارت گارت کمک می دهیم. و عطای پروردگارت هرگز از کسی باز داشته شده نیست انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا بینگر چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری تری داده و یقینا درجات آخرت برتری هایش از این هم بیشتر است لا تجعل مع الله اله اخر فتقود مذموما مخزولا. هرگز معبود دیگری را با الله شریک قرار مده که آنگاه نیکو هیده خار خواهی نشاست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 وَلَا تقل لَهُمَا اُفْرٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا و پروردگارت چنین مقرر داشته است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند حتی به آنها کلمه عف نگو و بر سر آنها فریاد نزن و بانیکی و بزرگ با آنها سخن بگو و لهما جناح الذل من الرحمت و قر رب ارحمهما کما رب صغیرا و از روی مهربانی بال فروتنی برای آنها فرود آور و بگو پروردگارا به آنان رحمت آور همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا پروردگار شما به آنچه در هایتان است آگاه تر است اگر صالح باشید بیگمان او برای توبه کنندگان آمرزنده است. القربا حقه وابن ولا تبذیر و حق خیشاوندان را بپرداز و همچنین حق مسکین و در راه مانده را بپرداز و هرگز اسراف نکن. این المبذرین کانو اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا به راستی که تبذیر کنندگان برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بَتِغَاءَ رَحْمَتٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فقل لهم, فقل لهم قَوْلًا مَيْسُورًا و هرگاه امیدوار رحمت و گشایش پروردگارت باشی از آنان اعراز کنی پس با گفتاری نرم با آنان سخن بگو ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا و هرگز دستت را به گردن خودت نبند و ترک انفاق منما و بیش از حد آن را مگشا آنگاه سرزنش شده درمانده بنشینی ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا يقينا پروردگارت روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده و یا تنگ می‌دارد بیگمان او او بندگانش دانای بی‌ناست ولا تقتلوا أولادكم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاكم إن قتلهم كان خطأا كبیرا و فرزندانتان از ترس تنگ دستی نکشید ما آنها و شما را روزی میدهیم به راستی کشتن آنها گناه بزرگی است ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ونذيك زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد است ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا يصرف فی القتل اینهو کان منصورا و جانی که خداوند حرام شمرده جز به حق نکشید و کسی که مظلوم کشته شود برای ولیش قدرتی قرار داده این. پس در کشتن اصراف نکند، بیگمان او مورد حمایت است. ولا تقربوا مال اليتیم الا باللتی هی احسن حتی یبلغ اشده و بالعهد إن العهد كان مسئولا و به مال یتیم نزدیک نشوید جز به روشی که آن بهتر است، تا آنکه به حد بلوغ و رشدش برسد و به عهد خویش وفا کنید، بی گمان از عهد سوال می شود و اوفول کی إذا کیلتون وزنوا و المستقيم ذلك خير و احسن و و هنگامی که پیممان می کنید پیمان را کامل و تمام دهید. و با ترازوی درست وزن کنید. این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن. بدون شک گوش و چشم و دل هر یک از اینها از آن باز خواست خواهند شد ولا تمشی في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا و در روی زمین با تکبر راه مرو بیگمان تو نمیتوانی زمین را بشکافی و هرگز در بلندی و قامت به کوه ها نمیرسی. كل <تصفح> ذلك كان <متصفح> همه این کارهای ذکر شده بدی و گناه آن نزد پروردگارت ناپسند است. ذلك مما إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر في جهنم مدحورا. احكام از آن حکمی است که پروردگارت به تو وحی فرستاده و هرگز معبودی را با خدا قرار نده که نکوهیده مترود در جهنم افکنده می شوی اف اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائكة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما <تصفيق> آیا پروردگارتان برای شما پسران برگزید و خودش از فرشتگان دختران را برگزیده است بیگمان شما سخن بزرگ می گویید و صرفنا في هذا القرآن لذكر و يزيدهم نفورا به راستی ما در این قرآن سخنان گوناگون آوردیم تا متذکر شوند ولی جز به رمیدنشان نمی افضاید. قل لو كان معه كما العرش پیامبر بگو اگر آنچنان که آنها میگویند با او معبودانی بود در این صورت معبودان سعی می کردند راهی به سوی خداوند صاحب عرش پیدا کنند سبحانه و تعالی عما يقولون علواً کبیرا او <تسفح> پاک است و از آنچه آنها می و سیبرتر است تسبح له السماوات السبع والارض و و این من شیئین الا یسبح بحمده لَا لا تفقهون تسبیحهم كَانَ حَلِيمًا حليماً آسمان‌های هفت گانه و زمین و هر کس که در آنهاست همه تسبیح او میگویند و هیچ چیز نیست مگر آن به ستایش او تسبیح میگوید ولیکن شما تسبیح آنها را در نمی‌یابید بیگمان او برد بار آمرزنده است وإذا اذا القرآن القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا و پیامبر گامی که قرآن بخانی میان تو و میان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند پرده ای پوشیده قرار میدهیم. وجعلنا و جعلنا علی قلوبهم اکنتا این یفقهوه و فی آذانهم و واذا ذكرت ربك فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا و بر دلهایشان پوششهایی قرار میدهیم تا آن را در نیابند و در گوشهایشان سنگینی و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی آنها با نفرت پشت میکنند نحن اعلم بما یستمعون به ایذ یستمعون ایلیک و ایذ هم نجوه و ایذ هم نجوه ایذ یقول الظالمون این تتبعون الا رجلا مسحورا و چون به تو گوش فرا می ما داناترین به چه منظور به آن گوش فرا می دهند و نیز هنگامی که آنان نجوا می‌کنند آنگاه که ستمگران می‌گویند شما جز از مردی که جادو شده پیروین نمی‌کنید عمر کیف ضربوا لک الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبیلا به چگونه برای تو مسئله زدند پس گمراه شدند لذا نمی توانند راهی به سوی حق بیابند و, اذا كنا عظاما و, خلقا جديدا. و کافران گفتند آیا هنگامی که ما استخانهایی پوسیده و پراکنده ای شدیم آیا دیگر بار با آفرینش نشه برانگیخته خواهیم شد قل حجارتم او حدیده بگو سنگ باشید یا آهن او خلقم مما یکبرو فی صدورکم فسيقولون الذي فس قريبا يا هر مخلوقي كه در خاطرتان بزرگ مينمايد باز هم خداوند قادر است شما را دوباره زنده کند. پس خواهند گفت چه کسی ما را باز می‌گرداند؟ بگو همان کسی که نخستین بار شما را آفرید. پس آنان سرهایشان را از روی تردید به تومی جنبانند و می‌گویند آنچه زمانی خواهد بود؟ بگو شاید که نزدیک باشد. يوم بحمده و إلا إلا قليلا. روزی که خداوند شما را از قبرهایتان پرا می پس شما هم سپاس گویان دعوت او را اجابت می و می پندارید جز مدت کوتاهی در دنیا درنگ نکرده اید وقل لعبادی یقول التی هی احسن إن الشیطان ینزغ بینهم إن الشیطان كان للانسان عدوا مبینا و به بندگانم بگو با یکدیگر سخنی بگویند که آن بهترین باشد بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد میکند راستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. ربكم اعلم بكم ان او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم و پروردگار شما به حال شما داناتر است اگر بخواهد بر شما رحمت می آورد یا اگر بخواهد عذابتان می کند به ای پیامبر ما تو را بر آنها نگهبان نفرست وربك این و ربک اعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتينا داود زبورا پروردگار تو به حال هر کسی که در آسمانها و زمین است داناتر است و راستی ما بعضی پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور عطا کردیم. قل من دونه فلا كشف عنكم ولا ای پیامبر بگو کسانی را که به جای او معبود خود میپندارید بخوانید. پس آنها نمیتوانند بلا و مشکلی را از شما دور سازند و نه تغییر دهند أولئك الذین يدعون يبتغون إلى ربهم الوسیلة ایهم اقرب ويرجون ویرجون رحمته و یخافون عذابه این عذاب رب محذورا کسانی را که کافران آنان را میخوانند خودشان به سوی پروردگارشان وسیله تقرب می جویند که کدام یک از آنها نزدیک ترند و به رحمت او امیدوارند و از عذابش می ترسند بیگمان عذاب پروردگارت همواره ترسناک است و و هیچ آبادی و قریه نیست، مگر اینکه پیش از فرا رسیدن روز قیامت ما آنان را هلاک خواهیم کرد یا به عذاب شدیدی عذابشان می کنیم. این در کتاب ثبت است. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون و آتینا ثمودن قتم بصرتا فظلمو بها و ما نرسل بالآیات إلا تخویفا و هیچ چیز ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز این پیشینیان آن را تکذیب کردند و به قوم سمود ماد شتر که معجزهای ای روشنگر بود دادیم پس آنها به آن ستم کردند و آن را کشتند و ما معجزات را جز برای ترسانیدن نمی فرستین و ایذ قلنا لك این ربك احاط بالناس و اريناك إلا فتنه للناس والشجره الملعونه في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغyana كبيرا به ای پیامبر به یاد آور هنگامی را که به تو گفتیم بیشک پروردگارت به مردم احاطه دارد و رؤیایی را که به تو نشان دادیم و همچنین درخت ملعون در قرآن چیزی جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم ما آنها را می ترسانیم پس این ترسانیدن جز سرکشی بزرگ چیزی بر آنها نمی افضاید. و قُلنا اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا اسجد لمن خلقت و بیاد آور چون به فرشتگان گفتیم برای آدم سجد کنی پس سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریدی قال ارایتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن لاحتنكن ذريته إِلَّا قَلِيلًا سپس گفت به من خبر بده این کسی را که بر من برتری داده ای به چه دلیل بوده است اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی فرزندانش را جز ایده کمی ریشکن خواهم کرد قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا خداوند فرمود برو پس هر کس از آنان از تو پیروی کند بیتردید جهنم کیفر شماست که کیفری کامل است واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما یعدهم الشيطان الا غرورا. و هر کس از آنان را که می توانی با صدایت برانگیز و با یاری سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و در اموال و فرزندان با آنها شرکت جوی و به آنها وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمیدهد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك بی وكيلا بیگمان گمان تو هرگز بر بندگان من سلطه ای نخواهی داشت و پروردگار تو برای نگهبانی آنها کافی است ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از فضلش بهرمند شوید بیگمان او نسبت به شما مهربان است وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا و هنگامی که در دریا سختی به شما برسد جز او همه کسانی را که می فراموش میکنید. پس چون شما را به خشگی نجات دهد روی میگردانید و انسان بسیار ناسپاس است. افأمینتم این یخصف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا آیا از آنکه شما را به کناری از خشکی فرو برد؟ یا تند بادی از سنگ ریز بر شما بفرستد ایمن شدی اید؟ آنگاه برای خود هیچ نگهبان نیابید. ام امینتم این یعیدکم فیه هتارت اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فيغرقكم يغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيعاً آیا از آنکه بار دیگر شما را به دریا بازگرداند سپس توند باد ای بر شما بفرستد آنگاه شما را به کفرتان غرق کند ایمن شده اید سپس در برابر ما بازخواست کننده نیابید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 و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از انواع روزی های پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریده ایم چنان که باید برتری بخشیدیم یوم ندعو کل اناس بی امامهن فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُمْ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا به یاد آورید روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فراخانیم پس کسی که نام اعمالش به دست راستش داده شود پس اینان نامشان را با شادمانی می به اندازه رشته شکاف هستی خرما ایستم نمی بینند و من کان في هذه اعمى فهو فی الاخرة و سبیلا و اما کسی که در این دنیا از دیدن حق نابینا بوده است پس او در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است و این كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا اتخذوك خليلا اي پيامبر نزدیک بود مشرکان تو را با وسوسه های خود از آنچه بر تو وحی کردیم منصرف کنند تا غیر آن را به ما نسبت دهی و آنگاه تو را دوست خود بگیرند ولولا ان ثبتناك لقد قدت تركن اليهم شيئا قليلا واگر ما تو را ثابت قدم نمی كرديم به راستی بود اندكي به آنها تمایل كني اذا لاذقنا كضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا اگر چون این می کردی آنگاه دوچندان عذاب در زندگی دنیا و دوچندان عذاب بعد از مرگ به تو می چشاندیم. سپس در برابر ما برای خود یاوری نمی آفتی. و این... انكادوا ل یستفزونك من الارض لیخرجوك منها وذا لا یلبسون خلافك لا لیل و نزدیک بود با مكر و توطعه تو را از سرزمین مكه بلغزانند تا تو را از آن بیرون کنند و اگر چنین میکردند آنگاه پس از تو جز مدت کمی باقی نمی نمیماندند سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا این روش و سنت ما درباره پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت اقیم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و الفجر این قرآن الفجر كان مشهودا نماز را از زوال آفتاب تا تاریکی شب بر پادار و نیز قرآن فجر را بی گمان در هنگام قرآن خواندن در نماز فجر فرشتگان حاضر آیند و مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَ پَاسِي از شب را از خواب برخیز و با آن قرآن نماز بخوان که برای تو افزون بر دیگران است امید است پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برانگیزد وقر رَبِّ ادْخِلْنِي مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَل لِّي مِن و بگو پروردگارا مرا به در آوردنی راست به مدینه درآور و به بیرون آوردنی راست مرا از مکه بیرون آور و از سوی خود حجتی یاری کننده برایم قرار بده وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهقا و بگو حق آمد و باطل نابود شد بیگمان باطل نابود شدنی است. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا و از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است نازل می کنیم و ستمکاران را جزیان جز نمی افضاید وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا و هنگامی که بر انسان نعمت بخشیم از حق روی بگرداند و متکبران پهلویش را دور کند و هنگامی که کمترین بدی به او برسد ناامید گردد قل كل يعمر على شاكلته فربكم اعلم بمن واهدا سبيلا ای پیام بر بگو هر به روش خود عمل میکند پس پروردگارتان به کسی که او هدایت یافت است داناتر است و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما من العلم الا قلیلا و ای پیامبر از تو در باری روح سؤال می کنند بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است و لئین شِدنا لَنذهبَنَّ بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلًا و اگر بخواهیم آنچرا که به تو وحی کردیم از سین ات می‌بریم آنگاه در برابر ما برای خود هیچ کارسازی نخواهی یافت إلا باقی من ربك إن فضله كان عليك باقی ماندنش به سبب رحمتی از جانب پروردگارت است بدون شک فضل او بر تو بزرگ است قل إن اجتمعت الإنسان والجن على ای پیامبر بگو اگر انسوجن همگی گردایند بر آنکه همانند این قرآن را بیاورند هرگز همانند آن را نخواهند آورد هرچند برخی از آنان یاور برخی دیگر باشند و لقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابا اكثر الناس الا كفورا و به تحقیق ما در این قران برای مردم هر مسئله را گوناگون بیان کردیم پس بیشتر مردم جزء ناسپاسی را قبول نکردند وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الأرض ینبوعا و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم تا اینكه از زمین چشمهای برای ما جاری كنی او تكون لك جنته من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا یا باغي از نخل و انگور داشته باشی آنگاه نهرها در میان آن به خوبی جاری سازی او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا یا <تصفيق> آسمان را آنچنان كي ميپنداري پار پاره بر سر ما آوری یا خداوند و فرشتگان را روبروي ما بیاوری او يكون لك بيت جخر فن آو ترقه ف السماي ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقره قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا یا اینکه خانه ای پر نقش و نگار از سیم و زر داشته باشی یا در آسمان بالا روی و هرگز به بالا رفتنت ایمان نمی آوریم مگر آنکه کتابی بر ما نازل کنی که آن را بخانیم بگو پروردگارم منظه هست آیا من جز بشری فرستاده شده هستم؟ و ما و مردم را هیچ چیز باز نداشت از آنكه ایمان آوردند هنگامی که هدایت به سوی آنان آمد مگر اینکه گفتند آیا خداوند بشری را به عنوان پیام بر فرستاده است؟ قل لو کان في الأرض ملاك تون يمشون مطمئن لنزلنا لَنَّزَلْنَا عَلَيْهِمْ لَنَّزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرسولا. ای پیام بر بگو اگر در زمین فرشتگانی بودند که با آرامش راه می‌رفتند، مسلما از آسمان فرشته‌ای را به عنوان پیام بر برانها نازل می‌کردیم. کردیم بالله شهیدا بینی و بینکم کان بعباده بی ای پیام بر بگو همین کافی است که خداوند میان من و شما گواه باشد بیگمان او نسبت به بندگانش دانای بیناست و من الله فهو المهتد و من یقلیل تجد لهم اولیاء من وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَانَةِ عَلَى مُجُوهِهِمْ عَمْيَمُ وَبُكْمًا وَصُمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَكُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا و هر کسی را که خدا هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر کسی را که گمراه سازد پس جز خدا سرپرستان و دوستانی برای او نخواهی یافت و روز قیامت آنان را بر چهره‌هایشان نابینا و گنگ و کرمحشور می‌کنیم جایگاهشان جهنم است هرگاه آتش آن فرو نشیند بر آنان شعله‌ای سوزان می‌ابزاییم بأنهم این کیفر آنهاست به خاطر اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که ما استخانهایی پوسیده و پراکنده ای شدیم آیا دیگر بار با آفرینش تازه ای خواهیم شد اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والأرض قادر على أن یخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم اجلا لا ریب پیه فأبر الظالمون الا كفورا آیا نمیدانند که خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده قادر است که مانند آنها را بیافریند و برای آنان سرآمدی مقرر کرده که شکی در آن نیست سپس کاران جز ناسپاسی را قبول نکردند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 بگو اگر شما مالک گنجینه های بخشش و رحمت پروردگار من بودید آنگاه از ترس فقر و تنگ دستی از انفاق خودداری می کردید و انسان بسیار بخیل است ولقد آتینا تسع آیات بینات فَاسْأَلْ بَنی اسرائیل اِذ جاءهم فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا و به راستی ما به موسى نه معجزه روشن دادیم پس ای پیامبر از بنی آن زمان که موسی به سوی آنان آمد فرعون به او گفت ای موسی گمان میکنم تو سحر شده ای قال لقد علمت ما انزلها الا رب السماوات والارض بصائر و موسی موسا گفت تو قطعا میدانی دانی که این معجزه ها را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنگری نفرستاده است و من ای فرعون یقینا تو را هلاک شده میپندارم پندارم فأراد ان یستفزهم من الأرض فأغرقناه و من معه جميعا پس فرآن تصمیم گرفت که آنان را از آن سرزمین بیرون کند پس ما او و همه کسانی را که با او بودند غرق کردیم وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکن الارض فإذا جاء وعد الاخرت جئنا بكم لفیفا و بعد از حلاکت او به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید. پس هنگامی که وعده آخرت فرار همه شما دست جمعی خواهیم آورد و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا و ما این قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و تو را ای پیام بر جز بشارت دهنده و هشدار دهنده نفرست دادیم. وقرآنا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علا مکس و تنزیلا و قرآنی که آیات و سوره هایش را جدا ساختیم تا آن را درنگ بر مردم بخوانی و آن را تدریج نازل کردیم قل آمنو به او لا تؤمنوه ان الذين اوتوا العلم من قبل إذا يتلا عليهم يخرون يخرون للاذقان سجدا اي پیغمبر به گوخاه به آن ایمان آورید یا ایمان نیاورید بی گمان کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده هنگامی که آیات قرآن بر آنها خوانده می‌شد، کنان به رو در می‌افتند. و می ربنا كان وعد ربنا گویند منظه است پروردگار ما که یقینا بعدهایش انجام شدنی است. و یخیرون لیل اذقان یبکون و خشوعا و آنها گریه کنان برو در میفتند و طلاوت این قرآن بر فروتنیشان می افضاید قل ادعو الله او ادعو الرحمن ایمما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا بگو الله را بخانید یا رحمان را بخانید هر کدام را بخانید پس فرقی ندارد برای او نام های نیکوست و نمازت را نزیاد بلند بخان و نا آن را خیلی آهسته بخان و میان آن دو راهی برگزین وقل الحمد لله الَّذی لم يتخذ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌ مِّنَ الذل. وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا و بگو ستایش برای خداونده است که فرزندی برای خود برنگوزید و او را در فرمان روائی هیچ شریکی نیست و به خاطر ناتوانی سرپرستی برای او نیست و او را به شایستگی بزرگ به شمار. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان الحمد لله الذی انزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا. حمد سپاس مخصوص است که بر بنداش کتاب قرآن را نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحرافی در آن قرار نداد قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین و یبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنات در حالی که ثابت و مستقیم است تابت کاران را از عذاب سخت او بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست فیه ابدا. همان بهشتی که در آن خواهند ماند و, و نیز کسانی که گفتند خداوند فرزندی برای خود برگزیده است بیهیم دهد ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتا تخرج من افواههم این يقولون الا کلمات نا ایشان به این سخن علم و آگاهی دارند و نه پدرانشان سخن بزرگی از دهانشان بیرون می شود آنان جز دروغ نمی گویند فلعلك باخع نفسك پس گویی می خواهی در پی ایشان خود را از غم و اندوه هلاک سازی اگر به این سخن قرآن ایمان نیاورند جعلنا ما علی لها ما آنچه که روی زمین است زینت آن قرار داده تا آنها را بیازماییم که کدام یکشان بهتر عمل می کنند و اینا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. و ما سرانجام آنچه که روی زمین است به خاکی هموار و بیگیاه تبدیل می‌کنیم ام حسبت ان اصحاب الكهف كانوا من عجبا آیا گمان کردی که اصحاب که و رقیم از جمله نشانه‌های شگفت انگیز ما بوده اند؟ از اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه فقالوا ربنا من لدن که رحمتا لنا من امرنا رشدا یاد آور انگاه که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای من فراهم ساز فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. پس ما پرده های خواب را در غار بر گوش هایشان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند ثم بعثناهم لنعلم أی الحزبین أحصی لما لبثوا مدا سپس آنها را برانگیختیم تا بدانیم کدام یك از آن دو گروه مدت ماندن خود را بهتر حساب کرده است نحن نقص علك نبأهم بالحق بربهم <تصفيق> ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو میکنیم آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما بر هدایتشان افزودیم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 و ما دلهای آنها را محکم ساختیم هنگامی که قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است و ما هرگز غیر از او معبودی نمی‌پرستیم. اگر چنین کنیم سخنی گذاف و بیهوده گفتهیم هاولئی قوم اتخذوا من دونهی لولا یأتون عليهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا این قوم ما معبودهایی جز خدا انتخاب کرده اند چرا دلیل آشکاری بر این معبودان نمی آورند چه کسی ستمکار تر است از آن فردی که بر خدا دروغ ببندد و اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف ينشر لكم یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لكم من امركم میرفقا و به آنها گفتیم هنگامی که از آنها و آنچه را جز خدا پرستند کنار گیری کردید پس به قار پناه برید که پروردگارتان نعمتش را بر شما می گستراند و راه آسایش و نجات از این امر را برای شما فراهم می‌سازد. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عنك فيهم ذات اليمين و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد و, و خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست قارشان متمایل می گردد و به هنگام غروب به سمت چپ و آنها در محل وسیع از آن قار قرار داشتند این از آیات خداست هر کس را هدایت کند پس او هدایت یافته یه است. و هر که را گمراه کند سرپرست و راه هرگز برای او نخواهی یافت و تحسبهم ایقاضا و هم رقود و ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم و اگر لو منهم فرارا منهم رعبا به آنها نگاه میکردی میپنداشتی بی دارند در حالی که آنها خفته بودند اما آنها را به سمت راست و چپ می میگرداندیم و سگ آنها های خود را به حالت پاسبانی بردهانی غار گشوده بود اگر به آنها نگاه می کردی قطعا فرار میکردی و تو از آنها سخت میترسیدی ترسیدی و كذلك بعثناهم لیتساءلو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 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا فَيَنْغُونَ مَا أَنْهَارَ أَزْخَابَ رَنْغِيخْتِي تَازْ از يِكِ دِيگر سُوال كنند يكي از آنها گفت چه مدت خوابیدید؟ گفتند یک روز یا بخشی از یک روز؟ گفتند پروردگارتان داناتر است که چقدر مانده اید؟ پس اکنون یک نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر بفرستید و باید بنگرد کدام یک از غذاها پاکیزه تر است پس روزی و تعامی از آن برای شما بیاورد و باید دقت کند؟ به هج کسرا از حال شما آگاه نسازد. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا بدرستی اگر آنها بر شما دست یابند سنگسارتان میکنند یا شما را به آیین خیش باز میگردانند ودر آن صورت هرگز راستكار نخواهید شد وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 و این چون این مردم را متوجه حال آنها کردیم تا بدانند که وعده خداوند حق است و آنکه در قیام قیامت شکی نیست هنگامی که مردم میان خود در این بار نظامی میکردند، پس گروهی گفتند بنایی بر آن بسازید پروردگارشان از آنها آگاه تر است برخی دیگر که قدرت به دست داشتند گفتند بر ایشان پرستشگاهی می سازیم سیقولون سا ثلاثت رابعهم کلبهم و یقولون خمست سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون و ثامنهم كلبهم ورببي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراا واللهرا ولا تستفتيهم منهم احدا گروهي خاهان گفت آنها سه نفر بودند که چهارمین آنها سگشان بود و گروهی میگویند پنج نفر بودند که ششمین آنها سگشان بود همه اینها سخنانی بدون دلیل است و گروهی میگویند آنها هفت نفر بودند و هشتمین آنها سگشان بود بگو پروردگار من از تعداد آنها آگاه تر است جز گروه کمی تعداد آنها را نمیدانند پس در باری آنان گفتگوی مختصر و ساده داشته باش و از هیچ کس باری آنها سوال مکن و هرگز در باری هیچ چیز نگو من فردا آن را انجام میدهم ش الله والكر ّك إذا ننس تو وقل العس أيديني ربي اقرب من هذا شد مگر اینکه خدا بخواهد و هرگاه فراموش کردی پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو. امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند و لبثو فی کهفهم ثلاثمئت سنین و ازدادو و آنها مدت سی سال در غارشان درنگ کردند و نه سال نیز آن افزودند قل الله أعلم بما لبثو له غيب السماوات والارض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد ای پیامبر بگو خداوند از مدت ماندنشان در غار آگاه تر است قیب آسمان ها و زمین از آن اوست چقدر بیناست و چقدر شنواست آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند و او تعالی هیچ کس را در حکم خود شریک نمی کند وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَمَبَدِّنَ لَكَ كَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا و آنچه از کتاب پروردگارت به سوی تو وحی شده تلاوت کن هیچ کسی نمیتواند سخنان پروردگارت را دگرگون سازد و هرگز پناهگاهی جز او نمی‌یابی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 و با کسانی باش که پروردگار خود را صبح گاهان و شام گاهان و تنها وجه او را میطلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمانت از آنها برمگیر و پیروی نکن از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل ساخته این و هوای نفس خیش را پیروی کردند و کارهایشان از حد گذشته است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 و این یستغیثو یغاثو بما، ما این الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ای پیامبر بگو این قرآن حق است از سوی پروردگارتان پس هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر گردد ما برای ستمکاران آتشی آماده کردی ایم که سرا پرده اش آنان را از هر طرف احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند آبی همچون فلز گداخته که صورتها را بریان می کند برای آنان می آورند چه بد نوشیدنی و چه بد آرامگاهی است ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا به درستی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند همانا ما پاداش نیکوکاران را زایع نخواهیم کرد اولئك لهم جنات عدن تجري من, تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَتْ ثَوَابُ وَحَسُنَتْ آنها کسانی هستند که بهشت های جاویدان از آن ایشان است، بهشت هایی که نهر ها از زیر ها و درختان انجاری است، در آنجا با دست بند هایی از طلا آراسته میشوند، شوند و لباسهایی فاخر سبز رنگ از حریر نازک و زخیم دربر میکنند. در حالی که بر تخت ها زدهاند چه پاداش خوبی و چه منزل نیگو و خوبی است. واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا جعلنا بینهما زرعا به ای پیامبر برای آنها مثالی بزن مثال آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گردا گرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میان آن زراعت قرار دادیم کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیعا و فجرنا خلالهما نهرا هر دو باغ میوه آورده بود میبه های بسیار و چیزی فروگذار گذار نکرده بود و میان آن دو باغ نهر بزرگی جاری ساخته بودیم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو یحاوره انا أكثر منك مالا وأعز نفرا صاحب این دو باغ میوههای بسیار و درآمد فراوانی داشت پس به همین خاطر با دوستش در حالی که با او می کرد گفت من از لحاظ ثروت از تو بیشترم و از لحاظ نفرات نیرومندترم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ودر حالی که به خود ستم کار بود در باغ خیش داخل شد و گفت من باور نمیکنم هرگز این باغ نابود شود وما اظن الساعه قائمه ولا اردت باور نمی کنم که قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم انجای جایگاهی بهتر از این خواهم یافت قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا دوستي به در حالی که با او گفتگو میکرد به او گفت آیا به آن کسی تورا از خاک سپس از نطف آفرید آنگاه تو را مردی کامل قرار داد کافر شدی لیکن هو الله ربی ولا نه بربی أحد لیکن من میگویم الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمیدهم. و لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله این ترن انا اقل من کمالا و ولدا چرا هنگامی به باغ خیش وارد شدی نگفتی ماشاءالله نیرو و قوتی جز از ناحیه خدا نیست اگر مرا از نظر مال و فرزند کمتر از خود ببینی حسبانا, حسبانا من پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و بر باغ تو آفتی از آسمان فرو فرستد تا به زمینی بی گیاه ای تبدیل گردد او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا يا آب آن در عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری و احيط بثمر فاصبح يقلب كفيه على ما ان فيها وهي خاضية. و هی على عروشها و یا لیتنی لم اشرك بی احدا سرانجام عذاب الهی فرا رسید و تمام میبه هایش را دربر گرفت و نابود شد و او به خاطر حزینه هایی که صرف آن کرده بود پیوسته دستهایش را به هم میمالید در حالی که دار بست های آن فرو ریخته بود و می گفت ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم ولم تکن له فیعت ینصرونه من دون الله و و او را گروهی نبود که در برابر خداوند یاریش کنند و نتوانست که خود را یاری کند. هنالک الولاية لله الحق هو خير ثوابا و عقبا در آنجا ثابت گردید که یاری و کمک از آن خداوند برحق است. اوست که بهترین پاداش و بهترین عاقبت را دارد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 الله على كل شيء ای پیامبر برای آنان مسئله زندگی دنیا را بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم سپس گیاهان زمین با آن در همامیخت سپس خوشک گردید و بادها آن را به هر سو پراکنده اش کردند و خداوند بر همه چیز تواناست المال والبنون زینت الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست است و کارهای ماندگار شایسته نزد پروردگارت بهترین ثواب دارد و بهترین امید است و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و یاد آور روزی که کوخها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار و صاف میبینی همگان را گرد میآوریم و اهدی از آنان را فرو نمیگذاریم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا و ایشان به صف بر پروردگارت ارز میشوند و به آنها میفرماید همگی نزد ما آمدید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم بلکه شما گمان می کردید ما هرگز موعدی برای شما قرار نخواهیم داد و الكتاب فتر المجرمین مشفقین من ما خیه و ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبيره ۚ إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضلم ربك أحدا. اکتاب نامی اعمال درانجوزار دمیشاد. پس گنهکاران را می بینی که از آنچه در آن است ترسانند و می ای وای بر ما این چه کتابی است که هیچ عملی کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شما آورده است و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند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 که معدد بث بر برایشان بیان کن زمانی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس سجده کردند به جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید آیا او و فرزندانش به جای من دوستان خود میگیرید در حالی که آنها دشمن شما هستند ستمکاران چه جایگزین بدی دارند من اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عذدا من آنان را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نکردم و من هیچ وقت گمره کنندگان را دستیار و مد خود قرار نمی دهم ووم يقولو ندووشراكائَّ ذعمتم فدعم فَلم يستجبلَم فدعم فَلم يستجبلَهم وجعلنا بينهم م و بیاد بیاورید؟ روزی را که خداوند میفرماید، فرماید شریک هایی را که برای من میپنداشتید بخوانید بخانید پس آنها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند و ما در میان این دو گروه هلکتگاهی قرار داده ایم و را المجرمون النار و گناهکاران آتش دوزخ را میبینند پس یقین میکنند که در آن خواهند افتاد و از آن هیچ راه گریزی نیابند وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا و به راستی در این قرآن هر گون مسئلی برای مردم بیان کردی این ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله می پردازد.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 و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه وقتی هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند جز اینکه میخواستند سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید یا عذاب در برابرشان قرار گیرد و ما نرسل مبشرین و منذرین ویجادل الذین کفرو بالباطل لیدحضو به الحق و آیاتی و ما انذرو هزوا. و ما پیام بران را جز بشارت دهنده و حشتار دهنده نمیفرستیم و کسانی که کافر شدند همواره به باطل مجادله می تا به وسیله آن حق را از میان بردارند و آیات و نشانه های من و آنچه به آن بین داده شده اند به باد مسخره گرفتند و من اظلم من من ذکر بی آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفی آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا و چه کسی ستم كارتر از آن که به آیات پروردگارش پن داده شود سپس از آن روی گرداند و آن چرا با دست های خود پیش فرستاد فراموش کرد ما بر دلهای آنان پرده افکندیم تا نفهمند و در گوش هایشان سنگینی قرار داده ایم. و اگر آنها را به سوی هدایت بخانی پس هرگز هدایت نمیشوند شوند و رب الغفور لو یو بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدو من دونه موئلا و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است اگر به خاطر آنچه مرتکب شده اند آنها را معاخزه می کرد قطعا هرچه زود تر عذاب را برای آنها میفرستاد، ولی برای آنها معدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت و تلک القرآن اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمهلکهیم موعدا و این شهرها و آبادیها هنگامی که ستم کردند هلاکشان نمودیم و برای حلاکتشان معدی قرار دادیم و از قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبه و بیاد بیاور هنگامی را که موسی به جوان خدمتکار خود گفت من دست از جستجو بر نمی تا به محل برخورد دو دریا برسم هر هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیلهو فی البحری سربا پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند ماهی خود را فراموش کردند و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت فلم جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا پس هنگامی که از آنجا گذشتند موسی به جوان خدمتکار خود گفت غذایمان را بیاور که سخت از این سفرمان خسته شده این قال ارایت اذ اوینا الالصخره فانی نسیت الحوت فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا گفت به یاد داری هنگامی که برای استراحت به کنار آن تخت سنگ پناه بردین من در آنجا ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم و ماهی به طرز شگفت آوری راه خود را در دریا پیش گرفت قال ذلك ما فرتد على قصصا. موسا گفت آن همان چیزی بود که ما میخواستیم پس جستجوکنان از همان راه بازگشتند فوجد عبدا من عبادنا اتایناهو رحمتا من عندنا وعلمناه ملدن علما پس در آنجا بنده ای از بندگانم را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا موسی به او گفت آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو آموخته شده و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی قال انك لن تستطيع مع صبرا خزر گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی و کیفت على ما لم تحط به خبرا و چگون میتوانی بر چیزی که به راز آن آگاه نیستی شکیبایی باشی قال ستجلني ان الله ولا لك امرا. موسا گفت به خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم قال فا اتَّبَعْتَنِي اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حَتَّى حتى لَكَ مِنْهُ منه خزر گفت پس اگر همراهی مرا نمودی از هیچ چیز مپرس تا آنکه خودم در باری آن برای تو سخن بگویم فانطلقا حتی اذا ركبا في السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئن امرا حس آن دو به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند خزر کشتی را سوراخ کرد موسی گفت آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی راستی چه کار بدی انجام دادی قال الم لن صبرا خضر گفت آیا نگفتم تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی قال لا تاخذني بما نسيت ولا من امری عسرا موسی گفت به خاطر آنچه فراموش کردم مرام آخذ مکن و از این کارم بر من سخت مگیر ف... الا قت حتى اذا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا, نفس. قال أقتلت نفسا نفس لقد جئت شيئا دادند تا هنگامی که به نوجوانی برخوردند پس خضر او را کشت موسا گفت آیا انسان پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد کشتی به راستی کار زشتی انجام دادی